من میخورم و هر که چون من اهل بود میخوردن خوردن اون از ده خدا سهل بابد، میخوردن من حق از ازل میدانست گر من نخورم عقل خدا جهل بابد. می اگر غنی بود او شود، و زربده جهان پر از شور شود، در حقه لعل زمز و ریزم، تا دیده یقی قمم کور شود. نابرده به صبح در طلب شامی چند، دنهاد زخیش، دن برون گامی چند در کسبت خاص آمده آمیچند، بدنام کننده نکونا چند وقتی که طلوع صبح از رق باشد، باید به کفت جام مروق باشد، گویند که حق ترخ با بد در افواه، باید که بدین دلیل میحق باشد.